تو بس بسم الله جلسه قواعد الحمد لله رب الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیه الله فی روحی رحیمه الله و له فدا. با توسل و خدای متعال و, تر... و ترکل به خدای متعال و ترسل به پیامبر گرامی و اهل بیت ادخار بحث رو آغاز میکنم جلسی قبل بعضی از فروعات مربوط به بحث رو عرض کردیم که بحث تزاهم بود اشاره داشتیم تزاهم از منظرهای مختلف قابل تقسیم انواع تزاهم, تزاهم حکم واقعی با حکم واقعی تضاحم حکم ظاهری با حکم ظاهری تضاحم حکم ظاهری با واقعی بعد رفتیم تقریر جناب استاد بزرگوار آیت الله سید بحث رهبری و نسبت رهبری و مرجعیت رو از این منظر پی گرفتند که اگر فرض بگیریم فقیه اعلم باشد و در مباحث اما توانمندی و شایستگی مدیریت نداشته باشه کف نباشه و کسی که باشه اما اعلم نباشه اما کف باشه این رو بر چه اساس ما مقدم بکنیم بر اساس اینکه یکیش حکم ظاهری است یکیش حکم واقعی هم بحث جواز فتوا و حجیت فتوا هم بحث خود علمیت به عنوان حکم ظاهری تلقی شد و اینکه که حکام ظاهری برای حفظ حکام واقعی جل شدن ما وجوب در واقع تحییعه و زمین سازی برای رهبر کفر رو این رو یک واجب واقعی باید بدانیم و اون طرف که ظاهریست این برون مقدم میشه پس یک منظر یک مصدادق تطبیقی هم در این بحث ظریف و زیباد داشتیم خب یک بحث دیگه طبیعتاً ما میتوانیم داشته باشیم که این منشه مختلف در بحث تزاهم رو پس در نظر بگیریم این یک منظر بود منظر دیگری برای منشه های تزاهم باید در نظر بگیریم اجمالا ما اشاره کردیم که یکی از منظر های بسیار مهم برای شکل گیری این اینی که قدرت ما کم باشه اما بخوای موارد رو تکمیل کنیم امکان این هست که ما موارد دیگر برای به عنوان منشهید تازانهمم رو دنبال کنیم. مرکوم نایی در فواید دو لوسول جند یک صفخه سیصد و ۲ سی یک پنج مورد رو شمردند. اولین مورد تضاد متعلقم، در واقع پس بحث ما اینه که منشه های تضاهم کدام است. یکیش چیه مورد اول تضاد متعلقین مورد دوم عدم قدرت مکلف بر یکی بر هر دو فعل هر دو متعلق ولی ممکنه زمانشون تفاوت داشته باشه اگر زمان تفاوت داشته باشه ولی با وجود این که دوتا متعلق حکم در دو زمانند ولی این مکلف قدرت نداشته باشه که مثال در رکعت در قیام و نماز و اینها میاریم بعد ارز میکنم عبارات رو هم تطبیق خواهیم کرد پس یک اینکه متعلق حکم اینجا دو است دو تا متعلق حکم داشته باشین اینا با هم تضاد داشته باشن در زمان واحد باشن و امکان جمع اینها نباشه خب مورد دوم تفاوتش این بود که چی این اختلاف زمان داشته باشن قبلی وحدت زمان بود مورد اول و تضاد متعلق میشه مورد دوم اختلاف زمان دارن پس اینجا ولی با وجود اینکه الان در زمان واحد نیستن و اختلاف متعلق بخوا داشته باشن نه دو تا زمانه مشکل قبلی در اینجا حله ولی مشکل چیه مشکل اینه که باز هم مکلف نمیتونه اینها رو هر دو رو اقامه کنه و آجزه مورد سوم این که دو مورد دو تا متعلق حکم ولو اینکه حکمشون هم حتی متفاوته دو حکم متفاوته ربطی به هم ندارن اما این دو متعلق با هم تلازم داشته باشند به خاطر ویژگی که دارن اینها با هم باشند ولو اینکه دو تا حکم جدان ربطی به از این منظر ندارن پس مورد اول توش نیست تضاد متعلق نیست زمانشون یکی نیست اون قبلی هم نیست اما تفاوت دو تا حکم جدان اما تلازم داشته باشن حالا مثال های اینا رو هم بعد جده عرض اجمال در ذهن شما باشه مورد چهارم اینه که دو تا متعلق وجودن با هم وحدت داشته باشن این مورد سوم وجودن با هم وحدت نداشتن دو تا حکم جدان اما تلازم دارند مورد 4 رو نه بالاتر وجودن با هم وحدت و اتحاد داشته باشن این دو تا متعلق خب مثل موارد اجتماع امر و نهی بنده خاص و از موارد مورد پنجم اینه که یکی از دو متعلق مقدمه وجودی برای متعلق با بعد دیگه باشه اون قبلی ببینید متعلق ها در مورد چهارم وجودا یکی بودن اتحاد داشتن این مورد پنجم اتحاد وجودی ندارن اما یکیش مقدمه وجودی برای بعدیه مثل همون نجات غریق و اینها که حالا برمیگردیم. اینجا پس ای تضاهم این های تضاهم خاصیه تضاهم اختزاشی نیست که دائمی باشه تضاهم موقتیه. ولی چیه؟ چونکه یکیش مقدمه اون یکی مشکل ها خب، خب بنابراین الان ما پنج وش رو ذکر کردیم یه نکته آخر هم دارن حالا اصلش رو میگم بعد عبارات رو که میخوانیم روشندتر میشه پس ما الان از منظرهای مختلف رفتیم تضاد متعلق، تلازم متعلق، اتحاد متعلق یا موارد دیگر میفرمد که اگر این تضاد و تلازم، اتحاد یا دیگر موارد اینها، این, این تنافت تنافیه خلاص از سنخ تضاد یا به صورت جنبی تلازم و اتحاد اینا اگه دائمی باشه این دیگه تضاد نخواهد بود اینا جزء تعارض خواهد بود از با هم گره خوردن به صورت دائمی پس ما این مواردی که پنج گانه رو گفتیم اینا به صورت دائمی نیست که والا اگه دائمی باشن میشن از مصادیق تعارض بلکه ما الان میارمون اینه که دو تا حکم تضاحم مربوط به عالم امتصال و عالم امتصال متمایز از عالم جله احکام عالم امتصال متفاوت از عالم تضاحم تعارض و تضاحم و تعارض مال دو مقام اند یکیش مقام ثبوته یکیش مقام اثبات یکی ای مقام جعله یکی ای مقام تطبیق وظایف و احکام خب این موارد رو داریم همونطور که یک مبنای مرحوم ناینی دارن که احکام رو میگن به نحو قضیه حقیقیه جعل میشه ولی میگن که خب این صحبت ها طبقه این مبنا هست اما اگر مبنا رو چیز دیگه بدانیم بر مبنای قضای های حقیقی خارجیه بدانیم این تضاهم ها همش از سنخ تعارض خواهد بود این هم فقط در نظر داشته باشید پس فیل جمله بدانید که یه جاهای اختلاف مبانی میتوانه این بحث های تضاهم رو از استقلال بیندازه بگه آقا همون تعارضی که ما با این عدل میگیم سری مبانی سری ها این تضاهم ها میتوانه زیرمجموعه زیر تعارض حساب بشه این هم گوشه زن فعلا داشته باشید پس ما الان پنج منشأ برای تضاهم داریم مطرح می‌کنیم یکی تضاد متعلق در زمان واحد اینا با هم جمع بشن و اجتماع پیدا کنن یکی اینکه نه در دو زمان باشن ولی ما نتوانیم مورد سوم دو تا حکم جدان اما این متعلقین احکام با هم تلازم داشته باشن مورد چهارم تلازم نباشه اتحاد وجودی باشه مورد پنجم چی؟ اتحاد وجودی هم نباشه یکی مقدمه وجودی برای دیگری باشه خب ببینید اوارات معنوم ناینی رو در فواه دل اصول جلد یک صفحه سی صد و بیس و سی سد چاپی که بنده استفاده کردم در نرم افزار جامع فقر. المقامستانی فی منشه تضاهمه و خب امورن, امورن خمسه پنج مورده اولی تضاد دول متعلق به چه معنا؟ به معنا علیکم السلام ای... خب پنج مورد تضاهمه که داری منشه تضاهمه اولش تضاد دول متعلقه. به چه معنا؟ به معنا انا و متعلقان متعلقان زمان واحد این دو متعلق در زمان واحد خلاصه تزا پیدا کنم. خدمت شما عرض کنیم ايه تن بتضاد مطلقاً به معنا نه نهو اجتمع المتعلقان که زمان واحد خدمت شما عرض کنم الان پس اولی مورد منشه تظاهام رو خواندیم اشتمل متعلقان فی زمان واحد به حیث لا یوم کلل مکلا فعل اما چون که در زمان واحده نمیتوانیم این رو انجام بدیم این تظاهامش به خاطر این خب خدمش کنم تمرکز رو مبینم من کلاسم نمیشه صحبت کنم کما فل غریقین دو نفر دارن الان غرق میشن حکم چیه وجوب انقاض غریق این حکم ما الان یکیه یعنی دو تا متعلق داره خب یک غریق الف یک غریق ب الان یک حکم به دو متعلق تعلق گرفته نه مثال بعدی دو تا حکم به ازاله داریم و وجود صلات الان متعلق وجوب ازاله است بود متعلق وجوب صلات و امثال ذلك ما مشتمل متعلقان فی زمان باید پس دقت بفرمایید الان اینجا این غریبا یه جور مثال ازاله و صلات مثال متفاوته اون یک حکم داریم اینجا دو تا حکم از سانی عدم القد عدم ال. پس مورد دوم قرار چی بشه قدرت در دو زمان نداریم عدم و قدرت المكلف على فعل کل من المتعلقين ما اختلاف زمانا با وجود اینکه در دو زمانا و دو تا متعلقا ما قدرت نداریم مثال رکعت اول و دوم ما یا این رو بعد انجام میدیم یا اون اذا لم يتمکن اذا لم من القيام فی الرکعه و سانه معن بل کان قادرا علی القيام فی احدهما فقط خب فرق این دوتا چیه؟ و فرق و بین حضا و سابقه و ان دمعمل قدرت فی حاضل وجه ناشن عجززل مکلف فی حد ذاه ان فعل این اینوندی خدا ننته مشکل از این موک جز مفه. اما تو اون مورد یک چی بود و فی سابقه ای کان ناشن ان وحدت زمان متعلقین. مشکل به وقتت زمان برمیگرش تو این مورد دوم عجزش پس باید یه عجزی داریم تو این دومی به خودی خوده ولی زمانش متفاوته مشکل از اون طرف حله مشکل از جای دیگه است مندونن یکونن المکلف یه حد ذاتی آجزن لولا اتحاد و زمان خودش این خود خدا گیر نداره تو اون مورد قبلی زمان اونا مشکل بود به اونو تلق پس این دو مورد مورد اول تضاد متعلقه مورد دوم مشکل زمانی بود و عکز این بنده خدا ولو این که اونا در دو زمان هن. مورد سوم از تلاوزم المتعلقه این اختلاف اختلافه ما فی الحکم کما اضافه وجه و استقبال و قبل و هر اومد استقبال جدی من تلاوزم هم فی بازل هم کنم. این دوتا دوتا حکم جدا هن. ولی تلاوزم دارن استقبال قبل یه حکم استدبار جدی و اینا هم یه حکم دیگه است اما این دوتا که یکیش واجبه یکیش حرامه این دوتا با هم خلاصه واجبن در یه سری امکنه این دوتا تلازم دارن خب مورد چهارم مورد چهارم چیه؟ اتحاد متعلقه وجودن. مثالش چیه در اجتماع امرو نه کما فیلمه وارد اجتماع امرو نه بناهن علل جواز اگر قائل به جواز اجتماع امرو نه شدید شما قائل شدید که آقا این دوتا میتوانن با هم باشند اجتماع بکنند امرو نه امرو میگه بکن نه میگه نکن شما هم قائل شده اشکال نداره میگیم خب باشه ولی چه چیز رو ما میخوام انجام بدیم و ترک کنیم یه فعل رو یه متعلق دارن این امر امر میگه انجام بده نه یه میگه انجام نده ولی خب بابا اینا دوتا شان به یه مستاق کردن اگر قائل به امتناع امرو و نه بشیم، اجتماع امر نه بشیم خب اون که دیگه هیچ چیز، اصلا از ریشه حل. اما اگر قائل به جواز باشید، چون که یه جاهایی به هم میخوره این دیگه مشکل میشه. رسیتی فیما پس الامر من نه. تعالی توضیح و سیعت پس مبحث استعمال امر و نه ان شاء الله تعالی توضیحوا حاصل وجه فرق الفرق بینه و بین الاتحاد المصاقی کل عالم الفاسق کل عالم الفاسق و ان السانه الیس من باب تزاحم این وجه با اون اتحاد مستاقی فرق میکنه عالمی که فاسقه خب این دیگه تزاهم نیست اتحاد مستقیه خب مورد منشأ پنجم تضامن الخامس پس نگاه کنید اینجا ما تعالی میگفتیم عدم قدرت عدم قدرت یه مقداری مستاقش حتما بگیم برجسته است یا بگیم این پنج مورد مسادیق عدم قدرت به معنای آم من حالا یا اینجوری باید بگیم اون که میگیم یا اینکه مثلا اون به مستاقه بردرسته شد ولی ببینید دارم پنج مورد داریم مورد پنجم یکی از دو متعلق مقدمه وجودی باشه برای متعلق دیگه الخامس تایی رورت و عهد المتعلقن مقدمتن ل لمتعلق آخر کما عوض میخوام از بزرگواران که مرد خوبه و ما اینجا وای میسیم مرد میخوانیم اما برای به هر حال بزرگواران اهل فضلن و برای اینکه نکات بزرگواران خوب دیده بشه کما ازا توقفه اینجا المومنه علت تصرفی ملکل غیر بغیر رضا یک کار مقدمه است جای مومن یه فعل تصرف و در ملک غیر به غیر رزا هم یکیه اینا دو تا حکمی جدان ولی یکیش مقدمه وجودیه پس نگاه کنید اونجا که الان همه مثال میزنن این همه بر جسته ترین مستاقه همیشه برای خلاصه بحث تزاهم این که میگیم قدرت نحوه تقریرش تو اون بیان خیلی موقع نمیاد گفته نمیشه که آقا این مقدمه وجودی اونه تصرف در زمین غیر این مقدمه اونه ولی دو تا حکم جدان ساده اگه بخوایم بگیم،, بگیم آقا دو تا حکم ما اینم حواسمون باشه اون تقسیمی هم که قبلا عرض کردیم اینجا تطویق بکنید یه موقع تزاهم وجوب و وجود تزاهم حرمت, حرمت،, حرمت و حرمت یه موقع تزاهم حرمت و وجوب الان تو این مورد از این زاویه هم میتوانید نگاه کنید که یکی انجا المومن وجوبه تصرف فیملکل غیر حرامه الان این حرام تصرف فیملکل غیر تزاهوم پیدا کرده با یک حکم وجوبی که انجاه از یه زاویه میگیم که تزاهوم حکم حرام با حکم واجب که انجاه قریقه از یه جهت زاویه بس متفاوت میشه میگیم یکیش مقدمه وجودیه تصرف در ملک غیر به غیر رضا مقدمه وجودی اونه ممکنه یه جاهایی حرام و واجب مقدمه وجودی نباشن مثلا از سنخ تلازم باشه از سنخ چیز دیگه باشه از همه مصادیق اون مورد دوزبان در اینجا نیست ولی اعلم انه حاضل امور انما تکون و منباب تظام ازاکان وقوعها اتفاقیان لا دائمی پس این بحث الان مصادیق تمام شد یک دو تا تذکر و تفسره کلی که آقا این اگر دائمی باشه ما ممکنه از بحث تعارض از تضاهم خارج بشیم بیفتیم در بحث چی؟ بحث تضاهم، تعارض این تعمیر تصریح در آخرش بعد از چند خط بعد که میرسیم این یک نکته نکته بعدم که اون بحث مجعول بودن احکام به نحوه قضایی حقیقی یا قضایی وجودی که بعدن قائم رسید. خب برگردیم اینجا. می‌فرماید که آقا اینایی که ما گفتیم ولی ولم عن حاضل امور این پنج بند منشأ که گفتیم نه و تكون بمباب تضاوم ازا کان وقوها اتفاقی هن. لا دائمین گفتیم پنج منشم اگه دائمی باشه دیگه اینا رو بی خیال بذار کنار. اینجا دیگه تضاوم نیست. ازا کان اتفاقی اتفاقیًا اتفاقی اینجوری باشه ما میگیم تزام. نه لا دائمین. به حیث اتفاق تضاد المتعلقا و اجتماع ما فز زمان او اتفاق پس این مورد اول تضاد در یک زمان دومی او اتفاق عدم قدرت المکلف علا جمعه ما تو دو زمان او اتفاق تلازم المتعلقین او ات اتحاد ما او مقدمیت عهد ما من اینا تکرار میکنم مخواند در ذهن بزرگواران کامل بچسبه تضاد در یک زمان اتفاق عدم قدرت در دو حکم دو زمانه یکی همچی تلازم اتحاد مقدمیت دوباره تکرار میکنه و اما اضاکانه تضاد مورد اول اول تلازم مورد ثبت او اتحاد غیرزالکه او امور المذکورت دائمیان اگه دائمی باشه فیخ من باب هم و یعن درش فی باب تاروز اینا دیگه همه شد ما وقتی میگفتیم هم تو یکی دو چا با هم برخورد میکردن ولی تو تاروز دوگه همه جا پس اگه دائمی باشه این خلاصی متفاوته الاماتقه دمفی من از زابطه فی بین البابن فعند دایت زالک می باشه مشکل چیه؟ اگه دائه باشه این دو تا قابل تشری با هم نیستن تو همه هم موارد در همه زمان دارن خلاص مشکل پیدا میکنن فعند ادئیت زالک توجب اممتن امتناع منجل جلل حکمن و تشری اعما صوطن. ما میگفتیم گفتفتیم تزا... تعارض چیه ؟ می گفتیم مربوط به چه مقامی؟ می گفتیم مربوط به مقام تعارض مقام صوطه مقام جلله اگر دائمی بشه این امتنای جللب و تو حکم امتنای تشریع اینا به کجا بر میگردد با واللب صبوط و نه دائیت از توجب امتننا هم توجب و جعل جلل حکمنه و تشری احما صوبوطن خب اما ما کار نداشتیم ما میخواستیم در مقام امتصال باشه و یو علم ایزن انت تزام نکته بعدی پس این یه قید این بر پاراگراف بعد میوردن نکته بعدی این حرفایی که ما میزدیم بر این مبنای مرحوم ناینیه که میگن احکام مجعول بر نحج قضایی حقیقی هست این مبنای مرحوم ناینی مشهوره ولی اللم زن نه تظام این نممایت حقق بعدل بنای ال کول احکام مجولتا الان نهجل غذا حقیقیه ها و الله مقابل غذای حقیه چیه؟ اگر بگیم غذا های حقیقیه نیستن یعنی چی غذاایی خارج باشن غذای حقیقی چیه حک متعلق شده باشه به یک عنوان کلی موضوعی عنوان کلی باشه با خارج کار داریم چه الان داشته باشیمش چه نداشته باشیم ممکنه بعدا تحقق پیدا کنیم به ماهیت خورده پس اگر این گونه باشه ما این تظام رو خواهیم داشت ولی علم ای زن انت تظام این نما یه تحقق بعد البنوه علا کونه الاحکام مجعولتن علا نهج القضای الحقیقیه ها و اما لو به لو قلنا به جعله ها علا نهج القضای الخارجیه فالتظامه غیر معقولن بل جمعی ذلك يكون من كون با... من تعارض چرا لنا یک جمله الا امتناع الجل ايضا کمال افبچ و اینا شد امتناع جل ثبوتی خب پس یک نکته هست اینم حواستون باشه چون که مبنای مهم مبنای این خارجی بودنه لا بلای لا خوبه بگردید دقت داشته باشید که اون موارد ملازمه این بحث و لوازم و خلاصه ملحقاتش رو در نظر بگیید یکی از مواردی که به بحث این مبنای مشهور ماورائینی برمیگرده تفاوت تظاممو تعارض میشه اگر خلاصه اینو در نظر نکته اساسی است خب. این نکته فریم عرض کنیم مرحوم ناینه این منشعهای مختلف رو در تقریری اسمش گذاشته اقسام تزاهم خب این عبارات رو اینجا ببینید در تقریر مرحوم میرزا عبالفضل نجم آبادی رزبان الله تعالی علا جمیل علما خب از باب ارادت به این بزرگان طبیران مقرر رو که بگیم استاد به طریق علا مرحوم مرزاد اول فضل نجم آبادی کجا دفن شدن اگر بین قبر علامه تبا تبایی برقی شهید متحریم از اونجا حرکت کنید به سمت قبر آیت الله به و اینها و سجل دیوار بزرگ اونجا به نظرم ایمطین بروان تاب کتاب اونجاست چون مقرر مرحوم میرزا ابو الفضل نجبا مقرر هم شاگرد مرحوم آقازیا بوده و هم شاگرد مرحوم ناینی چند جلد کتابایشون آوردم بعضی مواردش یه مقداری مشکل داره که کدام مال مرحوم نایینیه کدام مال مرحوم آقازیا این حال الاصولی چ بعضی جلدای کتابایشون رو من استفاده کردم در یه سری بحثشان فکر می کنم بحث ولایت فقیه ظاهره مال مرحوم آغازیاست. جای دیگه نیدم کسی خلاصه به این عاییت داشته باشه از آغازیایی نه ولی خاطرم از در کتابشان مطنی شاید من تصفیشم عکسش هم بر گرفته بودم. که در اونجا، بعضی رساله های مجموعه رسائل چند دست جلدی برای بعضی چاپ کردن بعضی موارد مبهمه که من آغازی هاست من مرحوم ناینیه ولی فکر میکنم بحث به لطفقیش رو من دقیقت کردم به نظرم, در نظرم منده که تغریر بحث های مرحومه آغازی بودش قائل به بلد فرقی وسیع بودن نکته دوم در من هم در مورد آغازی ها یکی از بزرگان الان فراموش کردن میخواستن برگردن احتمالا ایران شان فرمودند که نه شما بمان این بحث قضای ما هم بمان و بعد بروگویاب یعنی انایت داشتن که خالصه بعضی بحث ها رو بعد تکمیل دید مرحوم ناینی مرحوم آغازیاب مرحوم اصفهانی. بعد محطول برو جردی، مرحوم سید عبولستن و بزرگان دیگه اینا در تراز رتبی بعد از مرحوم آخوندن خب مرحوم ناینی یه مقداری یه مبنه های داره با مرهم آخوند و اینا متفاوته آقای یسربی هم به نظرم احتمالا بوده باشن احتمالا ولی یسربی پدر نه یسربی پسر بعد خدمت رو ارز کنم مرحوم آغازی ها یه روی کرد داره بعضی بزرگواران من تو کنم تو اون بحث روی کرد چناسی باید با نگاه اصولی دنبال کنیم اینا اما یه توابیر به کار میبرن مثلا میگن مرحوم ناینی یه گرایش های عرفی گرایانه داره بعضی بزرگواران مثلا میگن آقای قهل ز... بوده ترگیرش مثلا میگن زوغ عرفی روانم بوده بحثاشو و برحال مکتبش ادامه پیدا کرده مرحوم آقای خویی خو... تو فضایشان بیشتر هست مکتبشان مرحوم آغازی ها و مرحوم اسفانی هم دیدن ولی تو چهاشو مرحوم ناینی بیشتر رفتن از مروجین مرحوم ناینی مرحوم میرز که مروج مرحوم ناینی در مشهد بود محسس برای مکتب تفکیق بگیر بیکمانا و جالب اینه که مرحوم ایزا مهدی در رساله اشتحادشون قائل به بلاد حالا در کلاس قواعد فقه و سیاسه این بزرگ داشته این بزرگان برای گردن ماست تا که بتوانیم بلو اشاراتی مرحوم ایزا مهدی اسفانی که مکتب تفکیک رو پی گرفتن مثلا ممکنه یه تقریر از مکتب که بخوایم بکنیم در مباحث معارفی یه مقداری به فلاسفه و به این قوانین عرفان و اینا این نقد کلی رو میشه بگیم دارن متوجه میکنن که آقا شما خیلی دارید این بحث‌های خودتون رو جدی می‌گیرید و اینا رو قطعی حساب میکنید بعد می‌یایید اون فلسفه بحث ظهورات رو تعویل می‌برید طبیعتاً کبرای کلی رو اون هم قبول دارند در یه مناظری جای فیاضی با جای سیدان من دیدم جای سیدان قبول داشتند که آقا اگه هیچی قطی باشه و اینا برای ما هم تعویل میبریم اما در بحث مصداقی خروجی های فلسفه و حکمت رو خیلی قطی نمیبینند میگن آقا خواهشا تعویل نه این ظهورات رو ما معارف رو از دین بگیریم و این ها. ولی کبرای کلی که قطی باشه لذا عملا یه جوری یه سری مباحثشون در بحثای معرفی شبیه بحثای اخباری میشه حتی اخباریون اسم منها رو در بحث دیگه که دارم اسمشو میزنم قطگرا یا قطبسندن لذا نگی مثلا یه جو ظاهر گرا ظاهر بینوینو نه بگیم قطبسند و قطگرا هست حالا این بزرگوان مکتب تفکیک هم اینطوری میشن ولی مرحوم ایزا مهدی فکر نکنیم مثلا اخباریون لزوبن با بحث ولد فقیه سر ناسازگاری دارن نه هم اون اخباریون میشن لابلای فرماهاتشون بعضی رو برد همین اخبارگرایان معارفی و با وجود اصولی دارن مرحوم ایزا مهدی اسفانی به هران تو مکتب مرحوم ناینیه خب تو بحث مصداقی هم تو بحث اجتماع تقلید که در فکر کنم بنیاد معارف موسیکا جایی برنجکار و جایی سوپانی دارن، اونجا چاب کردند، در اونجا بحث ولایت فقیر رو در بحث اجتماع تقلیدشون در سو اصولشون دارن. خب، این هم در نظر داشته باشیم. حالا برگرد این بحث خودمون، رحمت الله علیهم اجمعین. این حالا نکات مکتب شناسانم داریم، دیگه خارج از بحث میشه ولی من حالا خیلی دنبال بودم که خیلی یه جایی نتایج خوبی نرسیدم این بودم با روی کرده مکتب شناسانه ببینم مثلا تو این طور بحث‌های مربوط به مسلحت و بحثای این گونه چه تفاوتی میشه به دست برد خب خیلی سخت پیدا کردن و مقایسه اونها بیشتر این جایی که احیانا بحثای مربوط به مسلحت بشه خوب پیدا کنیم همین بحث‌های تزاهمه در اصول که در یکی دو جا عرض کردیم هسته که بعضی بزرگواران در تعادل و تراجیب میارند در مقایسه با تعاروز بعضی بزرگواران به مناسبت بحث زد در بحث ترطب اونجا میارند خب برگردیم اینه بحث این تعبیر که ما گفتیم مناشعه مختلفه اینجا چی بکار, بکار بردن؟ این دوتا ترکیب رو تعبیر رو با هم ترکیب کردن یکی چی گفتن اقسام از تضام و ناشع عن عجز المكلف لا يخلو من احد اقسام خمسه موارد هم به معنی عجز گرفتن اونجا من اس کردم اگر عجز بگی مثلا به معنای کلی ممکن موقع بگیم پنج نوع عجز داریم درسته توی یه موردش آمده بود گفته بود عجز ولی ممکنه عجز رو به معنای کلی بگیریم بگیم اون پنج تا به معنای عجزهای مختلفن خب حالا اینجا تصریح میکنم میگن از تظام و ناش انعجز المكلف پنج قسمه ببینیم این پنج تعبیر چگونهن با اون پنج تا که گفتیم چه تفاوت دارن یا عین همونن یکیش میفرما تمام نوع بین الفعلین یعنی چی؟ یعنی همون میشه بگیریم تضاد دیگه مفهوم تمان و بین الفعله یعنی تضاد داشته باشن مثال به چی میزنن؟ که مسئلت زد فعین از سلات و الازاله لا یکم ایجاد ما فی زمان واحد البته سلات و ازاله رو در اون تعبیر قبلی در جای دیگه به نظرم آورده بودن یه شاید هم بله ازاله و سلات رو در مورد اول مورده بودن با این تا قابل تطویخ هست خب خدمت شما عرض کنم مورد بعدی چیه سالات و اضاله فرمودن لا يمكن ایجاد ما فی زمان واحد و هکذا انقاذ الغریقا لا يمكن تحققو ممن لا يقدر علی انقاذ هما دفعتن خاطرتون باشه تون قبلی هم اومده بود اول گفته بود انقاذ الغریقا بعد گفته بود صلات و اضاله بدون توضیح ایشان هم همون رو تکرار فرمودن انقاذ غریق امکانش وجود نداره به صورت دفعی دو نفر رو مثلا یکی حساب کنیم این یکی دو این یکی دو این یکی دو این یکی دو این ما تمام و اون همون دومیه که گفتن در زمان اونها تفاوت هست که که اونه امتصال کل منافی زمان غیر زمان الاخر دو تا زمانه ولی این قادر نیست مثل همون مثال چی لایق داره علاقیان فی س حالتا این مثال رو گفتن سلاته این اونجا مثال مثلا قیام این بود در یه سلات به هست لقا فی احتامان لا داره الان قیامه در اون نماز دوم فل اخره میشه دوتا سلات بگیریم پس این مثال خوبه یه موقع رکعتن یه موقع چی؟ سلاته این قدرت ولی یکیش داره سوم منجت توقف واجبه علامقدمت محرمم اونجا تو تعبیر قبلی تعبیرشون چی بود؟ گفتن که مقدمه وجودی باشه نگفتن حرام باشه درسته. بند خودم جدا عرض کردم که ما میتوانیم تضامه این, این واجب و واجب حرام و, و... حرام. واجب و حرام اینجا از سنخه واجب و حرامه تو این مورد تو این تقریر تصریعی میفرمایند متقید زدن اونجا اون مستقش آم بود مثالش مقدمه حرام بود ولی اینجا یه قیدی آوردن اون شاید باشه بهتر باشه چون ممکنه ای خلاصه این برش هم گفتن واجب اینجا دو مورد گفتن یکیش مقدمه وجودیه که دیگه باشه اون مساقش میتونه آم باشه واجب و واجب باشه حرام و حرام باشه واجب و حرام باشه سه جور مثال میشد برای اون سوم بیارم اینجا الان در این تقریر محدودش کرده که توقف اطفاء الحريق او انوال غازل غرق على تصرف العزل مخصوصه اطفاء حريق هم مثال قشنگه خب یه نکته اصلی در مورد سوم با این تقریر عرض کنم معمولا ببین علما این رو آوردیم جزء تضاحم این تعبیری که ما رایج داریم به این نزدیکه و تفاوتش رو ملاحظه کرد چیه اینکه گفته میشه روی کارتای ماکیاولیستی تعبیر دیگه اینکه گفته میشه هدف وسیله رو توجیه میکنه. کنید اون یه مفهومه این دو تا رو میشه عام بگیریم. الان به من و شما اگر گفتن که هدف وسیله رو توجیه کند رو شما قبول دارید؟ قطعا باید بگیم خیر. چرا؟ چون که خیلی مطلقه. هدف هدف مقدس داریم، هدف حرام داریم. خب ولی آقا پس اگه میگید هدف حرام داریم همینه دیگه واجبی بر مقدمه حرام متوقف باشه نه اون دایره باز این توی چارچوب شرعیه ما هر جایی نمیگیم که منجعه بستگیم مورد هم داره که اهم باشه یه تجویز شرعی باشه بعد تزاهم هم حکم حرمت رو بر نمی داره. اینجا معذوریت میاره اما اونجا که میگه توت هدف وسیله رو توجیه میکنه در حال چیه این که میخوام بگم اصلا حکمش مشروعیت هست میتونه با این بیشتر سازگار باشه لزوم گله گشاده یه مقدار لزومن تو چارچوب شهر نیست پس بعضی آقا این که میگن آقا هدف وسیله توجیه میکنه ما قبول نداریم اما این رو قبول داریم که واجبی بر مقدمه حرامی توقف پیدا کنید در یه جاهایی نه لزومن همه جا این مثالشه. توقف فی اطفاء خب اگر اون تعبیل قبلی رو بگیریم حرام حرام شما الان ممکنه یه مقدمه داشته باشید اگر میخواید این آدم کشته نشه مجبورید بیاید یه نفر کوتک بزنید یا مثلا یه چیز یه ضربه محکم به پای اون بنده خدا بزنید سرش رو بیار پایین این تیراهنه دیگه که سرش نخوره این شمشیره نخوره زبان نداریم نوزو بله یا اون گوبنده خدا گوشش کره ما مجبوریم یه بلایی بیاریم سرش که اون بلای بزرگتر فرض کن اگر واقعا متوقف باشه خب اوقات از شما درد نکنی یه سیگه بزنید حالا تشکرم از اتان میکنیم به حال باعث نجات ما شدیم دست شما درد نکنه خدا انشالله حفظتو میکنه ولی از این کارا دیگه ما رو نزنیم مورد چهارم لطلازمه من اینوشو دیگه اونجا مشابه بود فقط نکات تفاوت یا مهم رو تاکید میکنم را به لطلازم اتفاقی بین امره لایمکن اجتماع هما تون قبلی آمده بود اصلا این اتفاقی بودن رو برای همه گفته بود حالا اتفاقی رو اشان در جامعه رو لطلازم الاتفاقی با این امرین لا یمکن اجتماع همون کمن نذرن پس اونجا هم ما الان چی داشتیم؟ مورد چارم چی داشتیم؟ ات... مورد ثبت تلازم المتعلق من اختلاف ما فلحکم بود اینجا الان برد چارم مورد چارم اتحاد المتعلقا وجوده بود هنجم مقدمه وجودی بود این ترتیبش پس این ستا الان با اونجا با اون بعدی با تقریر مرحوم آقای نجمه آدی تفاوتی داره در نظر بگیرید خب. پس شد اینجا تلازم اتفاقی اتفاقی رو در اون قبلی به همه زده بود ولی حالا توضیحش تلازم اتفاق بین امره لا یک اجتماعهما کمن نظر استقبار جدی یا جد جود خب دائما و اتفق اقامت اوفل اراه توی بعضل ادیام فهع نهامتصال امر سیمال مر نظری مطن اون یه ننظر داره دائمی این وش الان با این اقامت در عراق که باید رو به یه طرف دیگه باشه خلاصه تنافی داره اگه جد روی و ستاره قدرری شاید بگیریم حالا فرض بگیریم که حالا نمیدارم جهت ممکنه چی باشه ولی احتمال داره ستاره جهدی باشه یعنی اون ستاره قطب شمال به نظرم جهد ختم هست به اون میگه ولی یه جاهایی میگه آقا با اون میتوانه سازگاری داشته باشه چرا؟ چون که ستاره قطبی در واقع محور زمینه در قسمت شمال شما هر شب توانید اون رو ببینید کل سوور فلکی دورون میچرخند ولی اون ثابته خب این میشه شمال شما اگر در یه قسمت عراق باشید یه خطی بکشید به سمت مکه خب اگر میخواید نماز بخوانید تو اون خطه یعنی کاملا اون خطی که از مکه ما بکشید به سمت شمال این میشه خلاصه بعد پشت به ستاره قطبی یا جهدی باشید و روبه قبله باشید خب جای دیگه تنافی نداره اما اینجا اگر شما نز کردی که همیشه مثلا یه زمانهای خاصی فرض کن روبه ستاره قطبی بشین حالا تو نز باید یه حسنی باشه اینجا نمیدارم چه حسنی در نظر بگیریم ممکنه شما به هر حال خلاصه خیلی به ستاره علاقه علاقه‌مند باشید و هر شب نگاه بکنید حالا من که خودم خیلی علاقه مندم از بچگی در عالم ستاره شناسی خیلی علاقه پیدا کردم من یکی از بزرگواران سپایی آشنا برای ما از مسجد نوکو در نوجوان بگیم کلاس اول دوم راهنمایی بودیم آمدیم ما از مسجد بیرون من چند تا صورت فلکی نشان داد یه بعد از افتادن تو خط نجوم الان یه ثوابقی در خواد. تر هستیه زمانی کارایی می کردیم حالا برای رفه خستگی خدمت شما آ به که شیخ بهایی یه منزلهایی رو، رو به این ستاره ها درست میکنه یه فوایدی داره خب نکته جالبه. خدمش معوض کنم ما این زمانی برای کارا اینطوری می و فکر میکنم یه قسمتش هم برای دوستان بعد بر مخصوصا برای قبلا خیلی مهمه این قسمتش که به هر حال شما موقع از آن ظهر دقیقا خورشید رو به جنوب اگر بدانید که این شهرها چند درجه انحراف داره تا به خلاص دینوب تا به مکه و سمتش متمایل بشید خیلی کمکه سر ساعت از آن معلومه همیشه احتمال حوالی ما 34-56 درجه باشه خیلی راحت هر جا تو مسجد باشید میبینید نماز داریم درست میخوایم یا اشتباه خاطره هم من دارم فکر من سال تازه متعلق شده بودیم همون اواعی رفتیم روستایی. دیدم که تو مسجد نماز می‌خوندم خب دیدم سایه خورشید افتاده وسط ظهر منم نماز جماعت دیدم و اشتباهی کمی چرخیدم ولی باز احتیاط کردم یه کمی گذشت و دوباره قبله نما بودیم یه روزی یه بزرگوار دیدم داره نماز می‌خونه بهش گفتم آقا قبله اشتباهه وسط نماز من گذاشتم یه سر چرخاندم دیدم نماز رو بل کرد و رفت انشالله که خلاصه نمازش قبول بوده باشه به هر حال تصویر ذهنی خودش به هر حال که باید تبعیت از خلاصه هدایت و اینها کرد نبوده انشالله که خدا نماز ناقصش قبول کرده باشه خدمت شما ارز میکنم پس اینجا ما الان نظر کردیم حالا ممکن نمیدارم چون این حسنی که حجای لنگری فرست دادن مرحومه شیخ بهایی چون کار میکردن چقدر آیا میتوانیم طبق نظر کنیم؟ حالا یه حکمتی داشته باشه یا ملازم یه حکمتی یه فایده ای باشه نمیدارم من نظر استقبار الجد دائما و تفق اقامت و فلعراخ باز الایام فا این امتصال الامر سلاتی مال امر نظری ممتنه اون پس حواسون باشه الان اتفاقی رو فقط تو این مورد آورد ولی الباقی هم باید باشه خامه ال خامس ل تصادق العنوانا فی مجمع الواحدن وجودن و ایجادن مع اختلافه ما حقیقتن اونجا تعبیرشان چی بود یکیش گفتن تلازم یکیش فهمیدن اتحاد حالا ایشان به جای اتحاد اونجا گفتن اتحاد متعلقهن بعد یه جای بود تو یه مورد اون مورد یک من ارز کردم که مثلا گفت انقاض غریقین این متعلق در واقع دو مصداق یک متعلقن اون دفعه بله نظر ببخشید ازاله و سلات متعلق وجود بودن اینجا الان شاید مفهوم تصادق از یه جد بهتر باشه درسته گفت اتحاد وجودی اینم کمکه تصادق عنوانه این یعنی میبرسون مصداق متعلق تون قبلی می برد سر چی؟ سر اتحاد المتعلقن وجودن این شاید از یه جهادی ولی اون که خطاخش دوباره گفت اتحاد المستاقی یه مقداری باید فرق آن شد گفتش که این با اتحاد المستاقی فرق می‌کنه. خب ولی اشان بحث رو برده سر اتحاد المستاقی یه خیلی به هم نزدیکه به یکونن جهتین، جهتاین تقییدیتاین که مسئلت الاجتماع اون تغییر قبلی اجتماع رو کجا برد؟ خدمت شما عرض کنم بر رو اتحاد مطلقا وجوداً که موارد اجتماع امر نحی نهی اینجا هم الان شبیه اون شد اجتماع امر و نهی. در اما چی بنا عن جواز لمن له هم خب جواز رو آورد ولی یه قاعده اضافه کرد این علل جواز رو قبلیم آورد اما لمن له المندوه رو اونجا نیاورده بود و اما بنا عن علل الامتناع او الجواز مع المندوه اضافه شد ایشون اون قبلی نداشت جواز با عدم مندوه چی فالحکم المجعول لیس الا واحدا فپس فالحکم المجعول لیس الا واحدا یعنی چی یعنی مقام سبوت ما اگهی مقام سبوت داره وحث میکنه یه حکمیشتر نداریم این ظاهرش است پس این میشه چی؟ میشه تعارض فتدلیلان المسبتان لیلوکمین متعارضان دوتا دلیل متعارضان در واقع ما یه حکم بیشتر نداریم در ظاهر داشتیم باید بگیم دوتا حکمه با دو دوتا دلیله که دوتا هست حکم چی یکیه چون مقام سبوته کم نه و لولم تکن الجهت تقییدیتن بل تعلیلیتن کل علم و الفصفت دلیلان متعارضان این حواسون باشه این نکته خیلی ظریفه این بحث تعلیلی بودن و دیدی بودن بلقی جهات شبیه این بحث رو چی داریم میگیم که آقا یه جای حکمت هست یه جایی علته میگیم آقا به این خواهشن تمثلت نکن حکم رو دایر مداره. این مورد نکن این حکمت ها علت نیست که حکم دایر مداره اون باشه وجودن و عدمن اما این الان این مورد حکمته پس وجودن و عدمان حکم رو بنده به این نبین دایر مدار این مورد نبین تو بحث جهات تغییدی و تعلیلی هم همینطوره یه جایی اگه مثلا یه حیثیت تعلیلی باشه ممکنه شعاره به خاطر فلان نکته جل حکم کرده ولی چی حکم دایر مدار اون نیست اون معصر بوده ولی در حد چی؟ در حد دخالت درجل اما اینطور نیست که حکم دایل مدارم باشه در واقع حیث تعلیلی شبیه چیه؟ شبیه حکمت حیث تقییدی جهت تقییدی شبیه چیه؟ علت یا بگیم خودشه یا بگیم خودشه یا بگیم شبیهشه حالا اینجا می فرماید که اگر جهت تقییدی نباشه ولی تحلیلی باشه اینجا دلیل تا دلیل متعارزن خب حالا باید مصداقش رو پیشتر توضیح دن خب قسم پنجم فلقسم الخامس یمکن ادراجو و فی باب تارز ازاکان الموجه بالجهتن محلل للحکمین مثل چی میگه اگه تصادق دو عنوان باشه بر موضوع واحد برای یه مورد واحد به جای موضوعش اخت مورد بهتر بود چون میگیم تصادق تصادق دو عنوان داریم اون عنوان خودش میشه موضوع دیگه اون دو عنوان من به عمولا میگم اناوین موضوعی تصادق دو عنوان موضوعی برای یه مورد واحد این میشه چی اینجا الان دو تا جهت دو تا حکم و یمکن این یکون منباب اگر ازاکان الجهاتان محلل حکمه ملمهندوه و اجتمع ایجادن و وجودن خیلی پیچیده شد قسم پس دمود قسم پنجم داره چی میفرمایند الان قسم پنجم اسم شما رو گذاشتیم چی؟ تصادق و عنوانن در مجمع واحد وجودن و ایجادن و اختلاف ما حقیقتا دو تا حکم جداست مستاقش الان مستاق متعلق اینها یکیه خب این مورد رو هم بندن میگه در یه صورت میشه تضاهام در یه صورت میشه چی؟ تعارض اگر ما ناظر به خلاصه اینها رو ازاکان الموجه بالجهتن محلل این باشه این یه مورده ولی چیه؟ دو تا حکم بهش خورده ولی مورد واحده در مجموع این میشه تا, تا آرز ولی اگر این جهتان محل باشن برای دو تا حکم با وجود مندوه اما ازاکان هستند جهتان محلل للحکم هستند و محوجود مندوه و اجتماع و اجتماع ایجادن و وجودن اینجا دیگه چی تضاهم بگیرش؟ اگر تصادق دو عنوان باشه برای یه مورد میشه چی میشه تعارض ولی اگر این تا جهت محل برای دو حکم باشه راه چارم داشه مندوه یا چی راه در رو باشه حالا با هم آمدن پس اگر راه در رو باشه شما این رو تضاهم بدانید با یکونت ترکیب بینامه انزمامی هم. این دوتا با هم حالا یه انزمام پیدا کرده ولی راه در رو باشه کم ان قسمت رابط و سالس همکن نه یک کونا من با به تاروز کمال انح سرت مقدمه فل محرم دائما پس اینجا اون بحث دائمی بودن هم اون جعملان و حال که از تلا زمب این استقبال قبللب از استترال جد دائیان کمال اهل اراق نه همه عراه اون قسمت خط بالا فلادلله دلیل ال حرمت قصد و وجود به اتفال و فراز نا اننم دائمان یا توقف و علت تصرف و فلقه هست همطور در مورد دوم اما دو قسم اول چی میگه آقا زیل تعارض نیستن مگر این که تمانوشون دائمی باشه خب پس در مجموع یه جایی گفتن دائمی و غیر دائمی دوباره آمدن یه کمی تعمیم دادن یه جای پس اووردن دائمه بودن رو در اون مقدمه وجودی اووردن مقدمه حرام البته این یه مورد در اون م... صورتی که مقدمه میگن انحصار مقدمه شد این تحبیر ظریفه میگن اگر مقدمه دیگه داره برو سراخو اون مقدمه تنافی رفت میشه اما اگر مقدم منحصر باشه میشه من چرا این عبارات رو دارم میخوانم و مقایسه میکنم ببین تقریر از یک بزرگ بار ظاهرن اگه اشتبانه کنم حالا شاید مال آغازی بود بله از مرحوم ناینی من حالا برداشتایم بوده اونجا مرحوم ناینی بود اینجا مرحوم ناینی لذا ولی تقریر یه زرافت های بیشتری داره یعنی صرف این که ما الان گفتیم مقدمه وجودیه مقدمه حرامه باز نمیشه بگیم بستگی داره که مقدمه نهساری باشه یا نباشه دائمی باشه یا موقتی باشه خب تو مورد بعدی هم دوباره استدبار و اینا هم گفتن چی؟ تو مورد تلازم هم گفتن اگه دائمی باشه باز همینطور خب اما اون دو قسم اول رو که ایشان آورده بودن فرمودن نه زیر مجموع نیست دو قسم اول چی بود مگر اینکه که دائمی باشه باز البته باز قید دائمی رو آوردن اگه دائمی باشه خب پس ببینید این دائمی هم دوباره ایشان آوردن خب خدمه شما ارز کنیم یک سلواتی ما این فایل رو قید کنیم یه دقیقه استراحت بفرمایید